پایین دست مه و بخار زمین همچنان روی مزاره گندم و جو نشسته بود. دریاچه با امواج پولک مانند و برق می زد. نیزار در هاشیه دریاچه دیده می شد. کاکل قهدهی نیها در مسیر باد موج برمی داشتند، رنگ عوض می کردند و باز به حالت اول برمیگشتند. نگاهش میان نیزار گیر کرده بود. لابلای آنها رنگهای زرد و نارنجی می دید. کسی با سرعت از آن میان می و حراسان نگاهش می کرد. احساس کرد صدای سایش سایهش می سس میشنود. گام به گام به دریاچه نزدیک میشد. صدای پرواز او را به خود آورد. اگورگ من میبینم. اسماعیل به طرفش رفت و به دشت نگاه کرد. اونجاست. داره به طرف علاق چراغ بابا میره. علاقی کی؟ چراغ بابا چراغ بابا مال در دراست. الاق را دید. بزرگ بود و سفید. با فاصله ای نه چندان زیاد چشمش به گرگ افتاد. داشت به حیوان نزدیک میشد. پرواز با خوشحالی گفت. گرگ گرگ بریم اونجا. و خودش دوید. راه باریک بود و مال رو با پیچ خمی که از حاشیه ی قدیمی می گذشت و به دشت سرازیر میشد. پرواز فریاد میزد: زد. گرگ گرگ. های گرگ. اسمایل هم پشت سرش شروع به دویدن کرد. شیب جاده ملایم بود و خاک نرم و اسفنجی و دویدن راحت و لذت بخش بود کمی بعد به دشت رسیدند گرگ از همان بالا متوجه آنها شده بود به جای آنکه به الاق نگاه کند چشم به آن دو دوخته بود و مثل مجسمه سنگی روی دو پا نشسته بود و گویا انتظار می کشید آنها برسند الاق را به بوته از بسته بودند حیوان گرد را دیده بود تلاش می کرد تنابش را پاره کند و پا به فرار بگذارد پرواز به گرگ نزدیک شد اما جلوتر نرفت، ایستاد، در ماندن و رفتن دو دل بود. برگشت و به عقب نگاه کرد، اسماعیل با بیمیلی میدوید. به او رسید، هر دو ایستادند و به گرگی که با آرامش رو به آنها نشسته بود و نگاهشان میکرد چشم دوختند باز هم سرمایه موزی و گزنده قلب اسماعیل را فشرد و لرزشی در تیره پشت زانوهایش احساس کرد. گویا گرگ تنها به او خیره شده بود، تنها او را میدید. پرواز با صدای هیجان زده گفت داره نگاهمون میکنه چه چشمای قشنگی هم داره اما از همون چشم ها برقی می جهید و قلب اسماعیل را منجمد میکرد کاشین گرد مال من بود اسماعیل همچنان ساکت بود صدای ارعر عمیق و بلند اولاغ مثل شیپور بلند شد و در دشت پیچید حیوان به جاده نگاه میکرد صدای از آن طرف آمد هوش؟ هش الاق با شنیدن صدا بار دیگر از ته دل ارعر کرد. گویا بعد از آن ترس به آرامش رسیده بود پرواز گفت چراغ بابا اومد اسماعیل به آن طرف نگاه کرد. مردی از بالای تپه می آمد. پاهایش لخت بود و پارچهای بالای چوب دستیش برافراشته بود پرواز گفت بازم شلوارشو ورده زده بالای چوب تا خشک بشه چرا خب نمیتونه خودشو نگهداره داره. تون شلوارشو خیس میکنه چراغ بابا تند میآمد گویا او هم نگران علاقش بود. هی hey, حیوانش را صدا میزد. گرگ از جا بلند شد و آهسته به سوی عمق دشت رفت. پرواز به طرف او کشیده شد. اسماعیل دستش را گرفت و پس کشید. گرگ آرام آرام در پشت ها و پناه نهرها از چش پنهان شد. اسماعیل دست پرواز را رها کرد و گفت: حالا باید چیکار کار کنیم؟ یعنی yani, چی چیکار کنیم؟ برای اینکه که چراغ بابا لخته شاید از ما خجالت بکشه. نه بابا خیلی وقتا همینجور لخ می گرده. دیگه از کسی خجالت نمیکشه. چراغ بابا نزدیک شد. نگاهی به اولاقش کرد که از خوشحالی نزدیک بود شاخه از ازگیر را بشکند و بپرد توی بقل صاحبش. نگاهی هم به آن دو انداخت و پرسید. شما کی هستین؟ پرواز جواب داد. ما این چراغ بابا. شما رو نمیشناسم. منو که میشنازی پروازم این آقا هم نوه‌ی مشمدین است به نظر رسید شناخته است شلوارش را بالای چوب دستی مثل پرچمی بر دوش داده بود و پیش می‌آمد باد در خشتک گشاد شلوار افتاده بود و آن را به شکل خیک تبل کرده درآورده بود پیراهن بلند وصل خورده ای تنش بود که تا نیمه رانش افتاده بود باد میخزید زیر آن و بلندش میکرد و چراغ بابا مجبور میشد با دست پیراهن را بکشد روی شرمگاهش در آن حال پرسید شما حیوونو اذیت کردین این اینطور شده و به الاق اشاره کرد پرواز گفت گرگ اومده بود میخاست اونو بخوره تازه ما اومدیم و نذاشتیم اشتباه میکنین اون یه سگ بیستهابه که این طرفا سرگردونه پرواز با تأكید گفت نوه به خدا چراغ بابا گرگ بود من میشناسم گرگ گرگ بود خیلی خوب حالا اگه دلت میخواد خیال کنی گرگ دیدی دیده باش اصلاً به جای یکی صد تا ببین به طرف علاغش رفت و با زحمت تنابی را که با آن حیوان را به شاخه ازگیل بسته بود باز کرد الاق درشت و بلند بود برای سوار شدنش مجبور شد روی تخت سنگ برود بعد با سینه و شکم بپرد روی آن و با چند تکان یک پایش را رد کند آن طرف شکم حیوان و راست بنشیند روی پالان و چوب دستی را که شلوار خیس گیر بود روی شانه بگذارد و به طرف بنفشه در راه بیفتد. چند چکاوک با گرم شدن هوا توی آسمان در یک نقطه بالبال بال, بال می زدند و با صدای بلند می خاندند. تنها صدای آن پرندگان شنیده می شد دشت به نظر خالی می آمد. خبری از گرگ نبود اسمایل و پرواز هم پشت سر چراغ بابا راه افتادند ساکت بودند باد در گوشهایشان می پیچید و از یقه لباسشان به درون می خزید اولاغ چراغ بابا از پشت شبیه قاطر بود درشت و قوی و با گام های بلند که رفته رفته فاصلش با آن دو بیشتر میشد. در آن حال اددی زن سوار و پیاده از روبرو ظاهر شدند. مرکبشان علاق بود. لباسهایشان رنگ شادی داشت که با رنگ سبز مزاره و تبه ها چشم نوازتر شده بود. آنقدر بلند میگفتند و میخندیدند که صدای چکاک از یاد رفته بود. اسمایل با تعجب پرسید: چه خبر عروسی میرن؟ پرواز گفت؟ نه میرن آبگرم پشت اون کوها و برگشت کوههای پشت سرش را نشان داد که قله پر از برف بود و خاکشان به سرخی میزد این همه راه خیلی دوره که خب دیگه میرن خودشونو بشونن و تمیز بشن یعنی مثل همون آره تو ببشه دره نیست اینجاها فقط تو شهر میشه همون رفت دهات هموم نداره آن دو مشغول صحبت بودند که صدای علاق چراغ را شنیدند ارعرش بلند و از عمق دل بود نگاه که کردند، الاق دور برداشته بود و به طرف آن کاروان می رفت چراغ بابا شلوارش را از نوک چوب پایین آورده بود و بیان که بپوشد ست رو کرده بود سر و صدای های دسته روبرو هم در آمده بود نظم به هم ریخت، زنها با چوب افتاده بودند به جان اولاغ ها تا روبراهشان کنند اما وجود اولاغ چراغ بابا آرامش حیوانها بر هم زده بود الاق بر شیپورش می و میدوید. چراغ بابا افزارش را میکشید چوب بر سر و گردنش میزد اما حیوان اهمیت نمیداد. شاید هم نمیفهمید. گوشهایش را راست کرده بود و به طرف علاق روبرو خیز برداشته بود. در دسته زنها سواره ها هم از آرام کردن علاقها آجز بودند و دور خود میچرخیدند. چند زن پیاده با چوب دستی و سنگ به طرف علاق چراغ بابا حمله کردند و نگذاشتن جلو بیاید. اما الاغ بیتاوی میکرد. با وجود ضربات چوبی که بر سر و صورتش می‌خورد، چشم از آن چند اولاق بر نمی و میخواست خود را به آنها برساند. زنها که برای دور نگه داشتن اولاق مسمم بودند، با دیدن پاهای لخت و آویزان چراغ بابا و اوزای شلوارش به خنده افتادند. سرزنش ها شروع شد. خجالت بکش پیره یه چیزی بپوش. عجب آدم یا لخت اومدی جلوی ناموس مردم نمیگی گناه داره؟ این از خودش، اونم از اولاغش. ما چه خاکی به سرمون بریزیم؟ از یک طرف میگفتند، از یک طرف علاق را میزدند، از طرف دیگر هم قشقش میخندیدند. چراغ بابا با یک دست شلوارش را چسبیده و با دست دیگر در زدن چوب به سر و صورت الاق با زنها همکاری میکرد. با این تفاوت که بد و بیرا هم به علاق میگفت. صاحب مرده، بی هیا، بی آورو، حوش، هش، میدونم کنم؟ آبروم بردی اونقدر خوردی خوابیدی که زنها هم از یک طرف میگفتند حیوون به صاحبش رفته ببین چه پاهاییم داره شلوار تو برای چی در آوردی بالاخره توانستند سر علاق را برگردانند طرف دیگر و او را به حاشیه جاده ببرند تا راه برای کاروان باز شود. زنهایی هم که سوار بر علاق بودند از ترس پیاده شده بودند و آنها را با چوب راندند گروه توانست به سلامت از آن نقطه عبور کند. آخرین نفر که رد شد، اولاغ چراغ بابا سرش را بالا گرفت و هوا را بو کشید و به دنبال آن بر شیپورش دمید. صدایش این بار بلندتر و اندوهناکتر بود. زنها باز هم دست گرفتند. زبون بسته چه ناله میکنه. بمیرم براش، برای خودش یا سوارش، برای هر دو، اسمایل و پرواز کنار جاده ایستاده بودند و میشنیدند وقتی زنها آمدند اسماعیل دست پرواز را گرفت و داخل مزرعه رفتند تا گروه رد بشود زنها با دیدن آن دو سعی کردند صدایشان را پایین بیاورند و حرفهای نامربوط نزنند با این حال صدای پچپچ پچ و خندههای پنهانیشان شنیده میشد اسماعیل پرسید اینا برفش در درهای بودند نه مالا دهات بالا بودند آنهایی که از اولاغهایشان پیاده شده بودند، پس از مسافتی باز هم سوار شدند. همه با هم حرف میزدند همه با هم میخندیدند خندیدند، گوی با قمهای زندگی بیگانه بودند. رنگ لباسشان مانند رنگ گلهای وحشی در مزاره تازه سبز شده به نظر می آمد. این بار چراغ بابا اولاغش را به طرف ده برد و خیلی زود در سراشیبی منتهی به رودخانه و چمنزار پنهان شد. هوا همتر شده بود. آفتاب راست میتابید بر فرقشان. آهسته می‌رفتند و سکوت کرده بودند. باز هم صدای کاکلی و چکاوک ها بلند شده بود. گاهی ملخ‌های بزرگی از زیر پایشان ناگهان پرواز میکردند و چند متر آن طرفتر فرود می آمدند. زیر بالهای بیشترشان اننابی بود. آن دو هم از سراشی به تپه پایین آمدند. درختهای بید و چمنزار گسترده شده در پای آنها را دیدند. از آنجا صدای شرشر رودخانه شنیده میشد و همینطور هوهوی باد که میپیچید میان شاخه درخت ها و راستشان میکرد. نزدیک رودخانه رسیدند. الاق چراغ بابا به تنه درختی بسته شده بود و خودش مشغول نماز بود. پرواز گفت ظهر هر جا باشه با صدای از اون نمازشو میخونه برای همین لباساش همیشه تمیزه. به نظر میرسید چراغ بابا هم همراه شاخه ها راست میش و به رکوع و سجود می رود. اسمایل دلش می‌خواست همراه چراغ بابا به نماز می و شاید هم پشت سر او. اما نگران پرواز بود. نمیدانست چه خواهد کرد. به خانه خودشان می رود یا جای دیگر. احساس می‌کرد او بیمهل قدم بر و کند راه می رود. مثل بچه هایی که تکلیفشان را انجام نداده باشند و پدر و مادر آنها را به زور به مدرسه ببرند. به پرنده و پروانه نگاه می کرد. گاهی خم می شد و سنگی از زمین بر می داشت. بوته یا تخت سنگی را نشانه می گرفت و پرتاب میکرد نزدیک ده عقب می ماند هم آهسته میرفت تا فاصلشان زیاد نشود به خانه های بنفش در رسیده بودند که ناگهان پرواز فریاد زد اینجا را آقا اینجا رو نگاه کنین؟ چه خبره؟ بیام ببینین؟ خودش تکان نمیخورد اسمایل با عجل برگشت و رفت پیشش با كنجكاوی نگاه کرد. مار خاکستری بزرگی دور خودش چنبره زده بود و گاهی سرش را بلند میکرد و زبان دوشاخ سیاهش را در میآورد و دوباره سر میخواباند چطور دیدیش داشت میومد طرف جاده بره رودخونه برای چی رودخونه برای آبخوردن خونک شدن هوا که گرم میشه میریزند تو آب مار حس حس صدا میکرد و همچنان زبانش را نشان میداد اسمایل دست روی شانه پرواز گذاشت و گفت اینا حتما سمین که از کوبروت رودخونه میرن پرواز آهسته گفت برای من فرقی نمیکنه همشون رو میگیرم چی میگیری تو دیوونه ای پرواز نمیکشمشون که یه خورده باهاشون بازی میکنم بعدم ولشون میکنم برن عقل کم یه دفعه دیدی نیشت زد زهر اینا خطرناکه مارا با پرواز کار ندارن. گورگا با پرواز کار ندارن تو این دنیا هیچ حیوونی با پرواز کار نداره پس پروازم با اونو کار نداشته باشه. پرواز که با اون کار نداره، میگیره بعدم ولشون میکنه برن پیکارشون دست دراز کرد و گردن مار را گرفت و آن را از زمین بلند کرد. مار با سرعت پیچ خورد و دم خود را به اطراف زد. پرواز که گویا چوبی را از زمین برداشته بود با دست دیگه کمر مار را هم گرفت و نگذاشت حیوان خود را به این طرف و آن طرف بکوبد. بعد سر آن را بلند کرد و مقابل صورتش گرفت و گفت: چشماشو و زل زد به چشمهای مار که هی زبان دوشاخ سیاهش را بیرون می‌آورد، و بیتابی می‌کرد. اسماعیل گفت خیلی خوب، ولش کن بره. پرواز به راه افتاد و اسماعیل پشت سرش. مار همچنان تلاش می کرد و زبان در میآورد و پرواز هم زبانش را به طرف او دراز می‌کرد و می خندید. هیچ میدونی اگه به مارای اینجا بگی سلطان سوالان اومده فرار میکنن و نیش نمی‌زنن؟ نه. سلطان ساوالان دیگه سلطان ساوالان همین کوه که میبینی و با دستی که مار را گرفته بود به سبلان اشاره کرد اه، عجب، نمیدونستم بله اینجوریه، اینجوری یک دفعه سر مار را بوسید و قاه قاه خندید از بوی مار خوشم میاد، مثل هیچ بویی نیست بعد برگشت مار را به طرف اسماعیل دراز کرد بوش کن، بوش کن اسمایل سرش را پس کشید با این حال نگاهش چند لحظه با نگاه مار گره خورد پرواز قشقش می خندید به ده رسیدند مار را لوله کرد و مثل یک تکه تناب گذاشت توی جیبش اسمایل حواسش به مار بود خورشید بر کوچه های خاکی و خانه های گلی ده تابید و حرم گرمای آن فضا را انباشته بود جز چند بچه که در سایه دیواری بازی می‌کردند کسی دیده نمی‌شد. به میدان ده رسیدند تنها چند زنی که مجبور بودند در آن ساعت از چشم آب ببرند یا ظرفهای کثیف را بشویند آنجا بودند. مغازه اسحاق باز بود و صدای آهنگ ترکی از آن بیرون می‌آمد. پرواز به آن طرف رفت. اسماعیل هم ناچار شد پشت سر او برود. مغازه تاریک بود. اسحاق روی سکویی که یک متر بلندتر از زمین بود نشسته بود و چرت میزد. رادیو روی موج باکو تنظیم شده بود. خواننده یکی از آن ترانه‌های قدیمی را میخواند هر دو روی سکوی چوبی روبروی ترازو نشستند. آفتابه اسحاق پشت در بود. پرواز گردن کشید و با شیطنت توی آن را نگاه کرد و بعد سرش را بیخ گوش اسمایل برد و گفت: پرش کرده، آماده است. اسمایل هم خندید، اما حواسش به جیب پرواز بود و ماری که لابو چنبره زده بود تهان. وقتی ترانه تمام شد و گوینده اخبار موفقیت‌های اقتصادی را شروع کرد، اسحاق بیدار شد. کلاه کشوف سیاهی پس سرش بود. چشم های کشیده بادامی داشت با لبهای نازک که محکم به هم چسبیده بودند. قیافه شبیه نقاشی های قدیمی بود که از پشت یک کوه گردن کشیده باشند و به گله آهوان نگاه کنند. اسحاق وقتی آنها را دید گفت هان شما اینجا این؟ خیلی وقت اومدین؟ اسمایل گفت نه nah, تازه اومدیم. دیدیم خوابیدین گفتیم مزاحمتون نشیم اسحاق روی تشکچه قرمزی که نشسته بود جابجا جا شد و گفت شب خوابم نمی بره. در عوض روزا چرت میزنم اسمایل پرسید نوشابه دارین اسحاق به سقف پلاستیکی پر از آبی اشاره کرد که چند شیشه نوشابه تهان دیده دیده میشد اسماعیل از جا بلند شد و دو تا از شیشه ها را بیرون آورد و داد دست اسحاق بی زحمت بازشون کنین اسحاق با دروازه کنی که با نخ به قفسه فلزی بسته شده بود بازشون کرد اسماعیل یکی از نوشابه ها را خودش برداشت و دیگری را به پرواز داد. او با تردید گرفت. بگیر بخور، حتما تشنه‌ای. کنار هم نشستند و مشغول خوردن شدند. روی موج باکو پارازیت می آمد و صدای گوینده گم میشد. اسحاق رادیو را گذاشته بود روی زانوهایش و از این موج به آن موج میزد و برای اینکه صدا صاف باشد، خودش هم همراه رادیو می چرخید و خاننده دلخواهش را پیدا می کرد. اما وقتی به خاطر پارازید نمی توانست گوش بدهد، بد و بیراه می گفت. اسمایل بلند شد و با شیشه نوشابه خالی به طرف پیشخان رفت و دست توی جیبش کرد و پرسید دست شما درد نکنه چقدر شد؟ پیش از آنکه دستش را از توی جیبش در بیاورد، پرواز جلو پرید و در حالی که مچ اسمایل را گرفته بود، خودش دست کرد توی جیبش و گفت نه امو نگیر، من حساب میکنم. دستش را در جیب شلوارش برد و مار را مثل کلاف بیرون آورد و به طرف اسحاق دراز کرد اسمایل بهت زده نگاهش کرد اسحاق به هوای پول خواست دست دراز کند که مار سر و گردنش را بالا آورد و زبان دوشاخش را نشان داد اسحاق ماند چشمهای بادامیش گرد شد رنگش پرید و مثل کسی که در حال غرق شدن باشد آعا کرد و روی باسن عقب نشست اسمایل از پرواز دور شد مار هر آن خیز بر می داشت و بیشتر گردن می‌کشید و با صدای بلند حس حس می‌کرد. زبان اسحاق بند آمده بود و تنها آ آ می‌گفت و کف دو دستش را جلو گرفته بود و تاتی تاتی عقب می‌نشست. در آن حال مغازه تاریک شد. کسی داخل شد به دنبال آن صدایی برخاست. پرواز دستش را گذاشت پس گردنش. ضربه دیگری روی دستش خورد. پدرش بود. بیست سال تا حالا کجا بودی آن؟ پرواز به جای جواب از زیر دست و بال پدر بیرون پرید و بیرون دوید. پدر هم دنبالش رفت. وقتی اسمایل سرش را از مغازه بیرون آورد و نگاهشان کرد، پرواز به انتهای میدان رسیده بود. پدر ایستاده بود و با صدای بلند فوش میداد. پرواز دوباره راه آمده را برگشت. مار، مار چی شد؟ افتاد مغازه؟ اسحاق زبان باز کرده بود. اسمایل آمد داخل و پول را به طرفش دراز کرد. نه بردش بفرموین نمیخوام نمیخوام حتما برد نمونده باشه اینجا خیالتون راحت باشه خودم دیدم پیچی دور دستش برد اینجا نموند عجب بد جنس این پسر به زحمت از سک پایین آمد و آفتابه را برداشت اگه بیکاری چند دقیقه اینجا باشتم تا من برگردم کارم در اومد آفتابه به دست بیرون رفت خشتکش خیس شده بود گشادتر راه میرفت کمی بعد پدر پرواز در حالی که قرولون میکرد و اخمایش توی هم بود از مقابل مغازه گذشت و رفت. اسماعیل نگران بود داخل شود و چیزی بگوید و حرفشان بشود. دستش به پرواز نرسیده بود. صدای وزوز زنبوری که وارد مغازه شده بود و اطراف خوراکی ها پرواز میکرد شنید. با آمدنش مگز ها فرار کردند. سگ درشت و پشم و پیل ریخته پیری که بیشتر وقتها جلوی مغازه دراز میکشید و زیر چشم کسانی که داخل و خارج میشدن نگاه میکرد، آرام آمد دم در را به مغازه خیره شد. زبانش را آویخته بود و از فرت گرما له لح, لح میزد. وقتی اسماعیل را دید که روی سکون نشسته کمی مکس کرد. زبانش را تو کشید و گوشهایش را تکان داد و برگشت. اسحاق آمد: آفتابه را از آب چشمه پر کرده بود. گذاشت پشت در و گفت چند دقیقه دیگه هم بشین تا من برم خونه و بیام اگه کاری نداری ها؟ بری نشستم خانهش به مغازه چسبیده بود رفت و چند دقیقه دیگر برگشت شلوارش را عوض کرده بود از پله رفت بالا دوشکچه قرمز رنگ را برداشت و با دقت به پشت روی آن نگاه کرد معلوم بود که دنبال خیسی می گردد چیزی نفهمید اسحاقان را پهن کرد روی زمین و نشست رویش روبروی ترازو عجب اوزایی ها بگو آخه بچه تو با مار چی کار داری وقتی دید اسماعیل نشسته و حرف نمیزند، دوباره رادیو را برداشت و روشنش کرد و به موج سواری پرداخت تا به ایستگاه مورد نظرش برسد به زحمت جایی را پیدا کرد آنجا قِرچ قِرچ صدا میداد و صاف نمیشد اسحاق عصبی شد پدر سوخته پارازید ول می‌کنان از صدای خشک و خالیشون هم می ترسن. روی کدوم ایستگاه؟ باکو دیگه ایستگاه باکو من فقط به اونجا گوش میدم ده سال بیشتر باکو بودیم کیفمون کوک بود بزن به رقص این سرخان کمر شکسته کارو خراب کرد و یعنی مونده بودیم اسمایل جا به جا شد برایش جالب بود همین کت خدایی منم شدره؟ آره همین قیرشمال پسر خالمه تو نفت باکو بودیم. دوزی کرد هر جفتمون انداختم بیرون. من میتونستم اززای التماس کنم و بمونم، اما خریت کردم با سرخون برگشتم. هر جا باشه گم میزنه. اسمایل خواست چیزی بپرسد که صدای جیغو داد از طرف چشمه بلند شد.